بهار یک شبه از راه رسید زمستان همچون میهمانی ناخوانده بی آنکه خدا حافظی کند ناگهان راهش را کشید و رفت همه جا سبز شد خیابانها غرق در نور خورشید بودند و هوا ملایم و دلانگیز شد فضا مملو از رایحه مطبوع و دلنشین بود آواز پرندگان در پس زمینه ی روز شنیده میشد. ولی من به هیچی که از اینها توجه نداشتم. به دلیل فشرده بودن برنامه های تمرینی پاتریک بعد از یک هفته او را شب قبل دیده بودم. من و پاتریک نخواستیم بار همدیگر را در محل کارم ملاقات کردیم. قبل از اینکه در کافه فران کار کنم در آرایشگاه زنانه و مردانه کارآموز بودم. وقتی پاتریک وارد آرایشگاه شد و تقاضا کرد موهایش را با نمره چهار بزنیم، سامانتا صاحب سلمانی دستش بند بود. برای همین من کار پاتریک را طبق درخواستش انجام دادم. ولی تر از این نمیشد. در طول تاریخ بشریت موی کسی به این بدی کوتاه نشده بود. سه ماه بعد به این نتیجه رسیدم که اگر عاشق و رفتن با موهای خودم هستم، لزومن به این معنی نیست که می توانم دیگران را هم کوتاه کنم بنابراین کار سلمانی را ول کردم و رفتم با فرانک در کافه مشغول کار شدم وقتی من و پاتریک دوست شدیم و رفت آمد پیدا کردیم مشغول کار فروش بود و فهرست چیزهای مورد علاقه شامل آبجو، آبنبات، زن و صحبت از ورزش می شد احتمالا از نظر او یک شب خوب می بایست شامل هر چهار مورد باشد. پاتریک قیافه معمولی داشت و نمیشد گفت خوشتیپ است. هیکلش بزرگتر از من بود ولی من دوست داشتم. از متانتش خوشم می آمد. پدرش از دنیا رفته بود و او خرج مادرش را میداد و مراقبش بود و من رفتارش را با مادرش می پسندیدم. چهار برادر و خواهرش یاد خانواده والتون میانداخت. به نظر می رسید که خیلی همدیگر را دوست دارند. اولین بار که با پاتریک قرار گذاشتم و بیرون رفتم صدایی دائما در گوشم می پیچید که این مرد هرگز آسیبی به تو نخواهد رساند. در طول هفت سال دوستی پاتریک هرگز کاری نکرد که در من تردید ایجاد شود. صورتش خوش فرم بود و از بس در هوای آزاد وقت می آفتاب سوخته رانه پای داشت. ظاهرا هرچه تناسب اندام بیشتری پیدا میکرد به اندامش حساستر میشد و توجهش به اندام من کمتر یکی دو بار به پاتریک گفتم مثل اینکه دیگر برایش مهم نیستم اما با قاطعیت جواب داد تو زیبایی من در بو دوست ندارم لاغرشی واقعا دلم میخواست مثل او به ورزش علاق من شوم واقعا تلاش میکردم اما خیلی زود فهمیدم که با بقیه فرق دارم و هیچ کس مثل من نیست. بچه های باشگاه یا تنها بودند یا با کسی دوست بودند که از نظر ظاهر مثل خودشان باشد. جفتها مشفق هم در ورزش بودند. آخر هفتهها های ورزشی تدارک میدیدند. عکس همدیگر را داخل کیف پولشان میگذاشتند که دست در دست در حال بازگشت از مسابقه هستند یا متکبرانه مدالهایشان را نشان می دهند. پاتریک هیچ وقت اهمیت نمیداد که من به قول خودش من در لباس می پوشم. اما اگر حرف دلش را نمیزد چطور؟ شغل پاتریک معاشرت همه و همه حالا حل و تناسب اندام می‌چرخید. صحبت‌هایشان صحبت تماما در مورد کنترل وزن کاهش وزن پرورش اندام بود. پاتریکی که با دخترهای ورزشگار خوش اندام هش نشر داشت، اگر یک مرا مرابط قواره می‌دید چطور؟ اگر انهناهای بدنم که همیشه به نظر خودم خوشایند میآمد به چشمان تیزبین او خمیر مانند می آمد چطور؟ داشتم به این چیزها فکر میکردم و فکر و خیال بد جوری در مغزم میپیچید که خانم ترینر وارد شد و دستور داد ویل بیرون برویم. از نظت شو خواستم بیرون بهاری کنند برای همین فکر کردم شاید دوست داشته باشید حالا که اینجا هستن برید بیرون از هوا ذد ببرید نگاه منوویل به هم افتد. یک ابرویش اندکی بالا رفت. مادر، زوری که نیست داره؟ فقط فکر کردم که بد نیست برید هوایی بخورید. تخت شیب دارم سر چشم. لویزا، چای درست میکنی با خودتون ببرید؟ پیشنهادش اصلا غیر منطقی نبود. حیات بسیار زیبا شده بود. انگار با افزایش درجه هوا چیزها همه با هم تصمیم گرفته بودند سبز شوند گل نرگس یک دفعه از زمین زد بیرون پیازهای زرد خبر از گل های در راه می دادند شاخه های قهوه جوانه زدند گیاهان صدساله ساله با احتیاط راهشان را از میان خاک تیره و سفت باز کردند در را باز کردم و بیرون رفتیم ویل که صندلی چرخدارش را در مسیر سنگ فرش شده میراند به نیمکت چدنی تشکدار اشاره کرد مدتی آنجا نشستیم صورتمان را به طرف خورشید بیحال و بی رمق گرفتیم و به جیغداد گنجشکای های لای پرچین ها گوش دادیم تو چت شده؟ منظورت چیه؟ ساکتی خودت گفتی که دوست داری حرف نزنم. نه این تاری این سکوت تو مستبه میکنه چیزی شده؟ گفتم نه بعد اضافه کردم اگه واقعا دلت میخواد بدونیم به دوست پسرم مربوط میشه گفت آها. همون مرد دونده چشمانم را باز کردم فقط میخواستم ببینم آیا دارد مسخره می گفت خب، حالا موضوع چیه؟ بگو به امو ویل نه مادرم دست کم تا یه ساعت دیگه این اضافت رو مثل دیوانه ها نگه میداره خودتم باید با کسی درد دل کنی صاف و مستقیم نشستم و به طرف ویل برگشتم صندلی چرخدار مخصوص خانه یک دکمه کنترل داشت که نشیمن را بالا می آورد. تا او بتواند خودش را با قد افراد هماهنگ کند اما چون باعث سرگی میشد، میشد به ندرت استفاده میکرد. اما حالا نشیمن بالا بود برای همین مجبور بودم سرم را بالا بگیرم و نگاهش کنم کتم را دورم پیچیدم و از گوشه چشم نگاهش کردم تو بگو که میخوای چه چیزایی بدونی گفت چند وقته که با هم دوستید؟ بیشتر از 6 سال تعجب کرد این که خیلی طولانیه آره خیلی به پشت نیمکت تکیه دادم پتوی کوچکی روی پاهایش انداختم خورشید گمراه کننده بود ظاهرش بیشتر از آن چیزی بود که واقعا میتوانست باشد چیکار است مربی ورزش لابد دو آلتو آره چجور آدمیه؟ اگه ناراحت میشی فقط تو سه کلمه توصیفش کن. کمی فکر کردم. خوشبین، صادق، خیلی هم حساس به تناسب اندام. هفت کلمه شد. پس چهارتا مفتی گیرت اومد. حالا تو بگو چطور بود؟ کی؟ آلیسیا درست عین خودش مستقیما به چشمانش زل زدم. نفس عمیقی کشید و به درخت تنومند چنار خیده شد. موهایش جلوی چشمانش را گرفته بود. با خودم مقابله کردم تا آنها را برایش کنار نزنم. زیبا و خواستنی و به طرز باورنکردن این نگران نگران چی بود؟ بیش از انکه خودم متوجه باشم، کلمات از دهانم خارج شد. چهره ای کی از رضایت به خود گرفته بود. گفت تو تعجب میکنی. دخترایی مثل لیسا از شکل و استفاده میکنن چون فکر میکنن چیز دیگه ای ندارن. البته کمی بیانصافی میکنن. لیسا سلیقه خوبی داشت. وسایل لباس، دکوراسیون، هر چیزی رو میتونست و زیبا کنه. جلوی خودم را گرفتم تا نگویم هر کسی کیف پولی به عمق معدن الماس داشته باشد می تواند هر چیز را خوشگل زیبا کند وسایل اتاق کمی جا به جا می کرد و اتاق کلی بهتر به نظر می رسید هم. هیچ وقت از کارش سردر نیو بردم. سرش را به طرف خانه تکان داد. این ساختمون فرعی کار اونه وقتی تازه اومدم اینجا فکرم به اتاق نشیمن رفت که دکوراسیون خوبی داشت. اتاق را از نظر گذراندم. حالا که فهمیده بودم دکوراسیون آنجا کار اوست، میدیدم که از چشمم افتاده است. چه مدت با هم دوست بودین؟ هشت نه ماه. زیاد نیست. برای من زیاده. کجا با هم آشنا شدین؟ مهمونی شام. یه مهمونی شام بینهایت مزخرف خود چطور؟ سالن آرایش اونجا کار می مشتریم بود آها آه تو آخر هفتهش رو پر می کردی احتمالا بیافهم ما تو شده بود چون سرش را تکان داد گفت مهم نیست از داخل خانه زوزه یه بمه جارو برقی می چهار زن برای نظافت آمده بودند و همه لباس و کار شبیه به هم پوشیده بودند من مانده بودم که جای کوچکی مثل آنجا چرا این همه طول کشیده است دلت براش تنگ شده؟ ویل به چیزی در دور دست خیره شد می شود. به طرف من برگشت با لحن قاطع گفت من در موردش فکر کردم این نتیجه رسیدم که اون روپرت خیلی به هم میان با سر تصدیف کردم گفتم یه عروسی مسخره میگیرن یه نوکه پا جایی میرن مثل شما که رفتید خونه ای توی هومه ی شهر میخرن ولی پنج سال نشده میبینه آقا با منشیش دیخته روهم شاید حق با باشه بعد به موضوع آب و تاب دادم آلیسیا هم همیشه مقابلش میسته بدون که خودش واقعا بدون چرا. تو مهمونیای مسخره شامم یه سره از اون پیش دوستش بدگویی میکنه. روپرت هم طلاقش نمیده چون نگران حق و حقوقیه که باید بهش بده. ویل به طرف من برگشت. و هر شیش هفته یه بار با هم میخوابند. روپرت بچه هاشو میپرسته. در صورتی که هیچ کار خاصی برای تربیتشون نمیکنه. شاید ما یا هنوز خوب باشه ولی چهرش سرد و تکید است لبم را باریک کردم و ادامه دادم هیچ وقتم نمیگه واقعا چه قصی داره وار به کلاسای پیلاتس رو میاره شایدم سگ یا اسب بخره بعد خاطرخواه مربی سوارکاریش میشه روپرت وقتی چهل سالگی رو رد میکنه به دوی آهست رو میاره شایدم هالی دیویدسون بخری که آلیسی خیلی بدش میاد. هر روز که سر کار میره به مردای جوان همکارش نگاه میکنه و توی کافه دلش پیش افرادی که آخر هفته‌ها برای زنا تور پهن میکنن. یه به حرفشون گوش میده که تعریف میکنن با قایق کجا رفتن. بعدم با خودش فکر میکنه یه جورایی گول خورده، اما خودشم نمیدونه چه جوری. صورتم را برگرداندم. ویل به من زل زده بود. گفتم شرمنده. لحظه ای مکث کردم بعد گفتم واقعا نمیتونم اینو از کجا آوردم. حس میکنم یه خورده برای این مرد ورزشکار متاسفم. گفتم آه، نه به خاطر اون نیست. خودم سالایی که توی کافه کار کردم دیدم. خیلی چیزا دیدم و شنیدم. همه مثل همه کردار و رفتارشون مثل همه از چیزایی که میدیدی واقعا تعجب میکردی برای همین هیچوقت باش نکردی پلکی زدم آره فک نمیخواستم بگویم هرگز از من تقاضا نشد شاید در ظاهر کار زیادی انجام نمیدادیم، اما در حقیقت خود ویل عاملی بود که روزها به طرز نامحسوسی متفاوت از هم باشند، و این بستگی به روحیه ویل داشت، و مهمتر از آن به میزان دردی که احساس می کرد. گاهی وقتی از راه می رسیدم، از قیفهش می فهمیدم، امروز من و بقیه را تحویل نخواهد گرفت. من هم خودم را با کار خانه سرگرم می کردم. تمام تلاشم این بود که نیازهایش را پیش بینی کنم تا مجبور نشوم با پرسیدن مزاحمش شوم. عوامل متعددی وجود داشتند که باعث ایجاد درد در ویل می شدند. مهمترین آن تحلیل رفتن ماهیچه بود که بدنش را نگه می داشت. با اینکه نیتن موقع فیزیوتراپی نهایت تلاشش را به خرج میداد از تحلیل ماهیچه نمیشد خلاص شد. مشکلات گوارشی باعث دل درد میشد. گاهی هم درد شانه داشت. با اینکه از همه نظر مراقب بودند، گاهی درد ناشی از افونت مسانه گلیبان گیر ویل میشد. از بس در دوران نقاهت مثل نقل و نبات قرص مسکن خورده بود، زخم معده گرفته بود. گاهی اوقات چون مدتها به یک شکل نشسته بود، با باسنش زخم می شد. یکی دو بار در رخت خواب بستریش کردیم. زخم‌ها خوب شوند ولی او از دمرخوابیدن متنفر بود در این گونه مواقع دراز می‌کشید و به رادیو گوش می‌داد خشم و غذب از چشمانش می‌بارید سردرد هم می‌گرفت یکی از عوارض جانبی بود که به نظر من احتمالاً عاملش نومیدی و خشم بود از نظر ذهنی انرژی زیادی داشت ولی جای برای تخلیه آن وجود نداشت در صورتی که این انرژی باید در جایی مصرف میشد. اما چیزی که بیش از همه او را ضعیف می کرد، سوزش دست و پاهایش بود. طوری زغزغ زوق میکرد که دیگر نمی توانست تحمل کند. چنان اذیت می شد که نمیشد سرش را به چیزی گرم کرد. کاسه آب سرد می آوردم و دست و پایش را خیس میکردم. گاهی هم حوله خیس دورشان میپیچیدم به این امید که دردش را کاهش دهم از اوله ی آروارش و گاهی به نظر می‌رسید اصلا غیب شده است. انگار تنها راه برای کنار آمدن با حس سوزش در دست و پایش این بود که خودش را از کال بیرون بیاورد و قایب شود. واقعا برایم عجیب بود که می‌دیدم چقدر راحت با نیازهای جسمانی زندگی ویل کنار آمدم. واقعا ناعادلانه بود. علا رغم این واقعیت که نمی از دست و پاهایش استفاده کند، یا حتی حسشان کند مجبور بود دردشان را تحمل کند با وجود همه این ناراحتی ها ویل عادت به شکایت نداشت برای همین هفته ها طول کشید تا من بفهمم درد دارد حالا یاد گرفته بودم از تیرگی دور چشمانش سکوتش و آنجوری که در خودش فرو میرفت از درونش مطلع شوم فقط می گفت لو کمی آب میاری؟ یا فکر کنم الان وقت قرص مسکن باشه. گاهی چنان درد داشت که رنگ صورتش میرفت و مثل گچ سفید میشد. این روزها بدتر از همیشه بود. وقت‌های دیگر به خوبی با هم کنار می‌آمدیم. وقتی برایش حرف میزدم به نظر نمیرسید که مثل روزهای اول ناراحت شود. ظاهراً آن روز درد نداشت. وقتی آقای ترینر آمد و گفت که کار نظافت 20 دقیقه دیگر تمام می شود برای خودم و ویل نوشیدنی ریختم و سلانه سلانه چرخی در حیات زدیم. ویل در مسیری باری حرکت می و من هم به کفش کتانی هم نگاه می کردم که با راه رفتن در چمنهای خیز کسیف شده بود. ویل گفت عجب کفشی انتخاب کردی؟ رنگ کفشم سبز زمردی بود. از فروشگاه خیریه خریده بودم. پاتریک می وقتی این کفش ها را می شبیه دختر شاه پریان می شون. تو مثل آدمای این دوروبر لباس نمی پوشی. همیشه منتظرم ببینم دفعه چه چیزایی رو با هم جور می کنی و می پوشی. خب، آدمای این دوروبر باید چطور لباس بپوشن؟ شاخه ای روی زمین افتاده بود. برای همین، ویل مجبور شد صندلی چرخدار را کمی به سمت چپ منحرف کند پارچه پشمی یا اگه از گروه مادرم باشی لباس های شبیه به مال اون بعد به من نگاه کرد این سلیقه عجب و غریب از کجا آوردی؟ قبلا کجا زندگی می کردی؟ جایی زندگی نمی کردم پس همیشه خونتون اینجا بود؟ آره برگشتم و نگاهش کردم دستهایم را به حالت تدافعی روی سینه به هم قلاب کردم خب، حالا اشکالش چیه؟ اینجا شهر کوچیکیه، خیلی هم محدودیت آور همشم به خاطر قلعه است ایستادیم و به قلعه چشم دوختیم از دور می‌دیدیم که روی تپه عجیب و غریب و گنبت مانند شهر قد علم کرده است به زیبایی نقاشی یک کودک بود همیشه فکر کردم غره جاییه که مردم بازم میان مواقعی که از چیزهای دیگه خسته شدن یا نمیدونن کجا برن با چکرم البته فی نفسه هیچ اشکالی نداره اما چندان پرهایهو نیست جام بجوشی نداره نه؟ همیشه یه جوره چیزهای تازه، افراد جالب یا موقعیت خاصی نداره مردم اینجا فکر میکنن اگه فروشگاه های سیاحتی شهر زیر با منظره راه هم بفروشن آخر بدبختیه. نتوانستم جلوی خنده را بگیرم. هفته قبل یکی از روزنامه های محلی دقیقا مقالهای در همین مورد داشت. کلارک، <تص -2> <تص -2> تو بیست و شیش سال داری. وقتش از اینجا بری و دنیا را زیر پا بذاری. کمود لباس های عجیب و غریب تو واسه مردهای حق باز توی کافه به نمایش بذاری و خودتو توی مخمسه بندازی من از زندگی توی اینجا رازیم ولی نباید باشی تو چقدر دوست داری به دیگران بگی که چیکار کنه. گفت فقط وقتی که میدونم حق با منه لطفا نیو جابجا کن نمیتونم بخورم یه داخل نوشیدنی را چرخاندم تا راحتتر بخورد. سب کردم تا بنوشد. هوا اندکی سرد بود و نوک گوشش کمی صورتی شده بود. صورتش را در هم کشید و گفت: یا عیسی مسیح برای دختری مثل تو که از روی درست کردن چای نون میخوره، این چه چایی مزخرفیه که درست کردی؟ تو فقط عادت داری از اون چای سیاهای چینی شهوت برانگیز بخوری. شهوت برانگیز. از تعجب زبانش بند آمده بود بعد گفت هرچی هست از این روغنجلای راپله بهتره وایه قاشو به زیروش میسته <تصفيق> خب شاید چای من افتضاح باشه روبرویش روی نیمکت نشستم اما چرا برای تو ایراد نیست در مورد هر حرفی که میزنم یا هر کاری میکنم اسیر نظر کنی؟ خب ادامه دلویزا کلارک نظر تو به من بگو. در مورد تو؟ آه اقرغا میزی کشید و گفت: آه بگو من چیکار کنم؟ میبینی تو کوتاه کنی. شبیه آدمای ولگرد شدی. حالا شبیه مادرم شدی بدجور زشتت کرده دستکم میتونه سی اصلاح کنی موهایی صورت زیادی بلند نشده زیرچشمی نگاهی به من کرد آره خودم میدونم قبول امروز بعد هزور میزنم آه نه بله تو پرسی دیریشم زیادی بلند نشده منم جواب دادم از طرفی قرار نیست تو صورتم اصلاح کنی اگه بگم نکن چطور؟ باید اصلاح کنم اگه برند ترشه مجبور میشم خوردههای غذار ازش جمع کنم و صادقانه بگم وقت مجبور میشم از تو بابت به خطر انداختن سلامتیم شکایت کنم بعد لبخند زد انگار حرف خندیداری زدم تأصف آور بود ولی چون ویل به ندرت لبخند میزد باعث شد بی خیال موضوع شوم و من هم بخندم کلارک لطفی میکنی؟ چی؟ گوشمو بخارون عصاب همو خورد کرده اگه این کارو بکنم اجازه میدی من سرتو اصلاح کنم؟ فقط کمی مرتب تب میکنم حالا پرونه شو ولم ایس... نکن. خودم میدونم موکتهه کردنم خوب نیست. توی کابینت همما ریش تراش و خمیر ریش پیدا کردم. پشت بسته های دستمال مرتوب و پنبه بهداشتی چپانده بودند. طوری که انگار مدتها استفاده نشده است. ویل را رازی کردم بیاید داخل همه. لگن را پر از آب گرم کردم. پشت سریه صندلی چرخدار را کمی کش کردم. بعد حوله داغی زیر چانهاش گذاشتم. این چیه؟ مغازه سلمانی باز کردی؟ این هوله برای چیه؟ اعتراف کردم. نمیدونم. این کاریه که توی فیلم ها دیدم. برای زنام موقع زایمان هوله و آب گرم میبرم. نمی توانستم دهانش را ببینم ولی دور چشمانش از شادی چین افتاده بود. دوست داشتم همیشه همینطور باشد. دلم میخواست همیشه شاد باشد. راجی می کردمم لطیفه تعریف میکردم تازگیها ترانههایی زمزمه میکردم تا دیگران قیافه نگران و معذب را به خودش نگیرد. خلاصه هر کاری میکردم تا دوباره عبوس و غمزده نشود و بیشتر شاد و متبسم باشد. آستین لباسم را بالا زدم و خمیر ریش را به صورتش کفمالی کردم. گفتم حالا باید بگم تا امروز فقط پاهام و اینطور برای اصلاح کفمالی کرده بودم. <تصحیح> <تصحیح> چشمانش را بست و به پشت صندلی تکیه داد. من هم مشغول شدم و با ملایمت و احتیاط صورتش را با تیغ تراشیدم. فقط صدای شلب شلب وقتی ریش تراش را در کاسه آب می شستم، سکوت را می شکست. همینطور که در سکوت سرگرم کار بودم در بحر چهره ی ویل ترینر رفتم خطوطی که به گوشه های دهانش می‌رسید چین هایی که نسبت به سنش عمیق بودند موها را از گوشه ی صورتش کنار زدم رد آشکار بخیه‌ای که احتمالاً از تصادف بود بیرون افتاد سایه های ارغوانی که خبر از بیخوابی های شبانه میدادند. شیاره بین ابروهایش که از درد خاموش می‌گفتند بوی شیرین و گرمی از پوستش برمی‌خواست. تلفیقی از بوی خمیر ریش و عطری ملایم و گرانبها که از وجود خود ویل سرچشمه می‌گرفت. کم, کم صورتش نمایان شد و من میدیدم که چقدر راحت می توانست زنی مثل آلیسیا را جذب خود کند. آهسته و با احتیاط کار می‌کردم. وقتی میدیدم که چطور در آرامش است، جسارت بیشتری پیدا می‌کردم. به ذهنم رسید که فقط برای کارهای درمانی و پزشکی است که کسی بدنش را لمس میکند. با این فکر انگشتانم را آرام و لطیف روی پوستش برکت در آوردم و کوشیدم حرکات دستم حتی امکان متفاوت از تماس ماشینی دستای نیتن و دکتر باشد. اصلاح صورت ویل کاری کاملا شخصی بود. همینطور که مشغول کار بودم، با خودم فکر کردم صندلی چرخدارش مانه است. معلولیتش مانع هر گونه تمایلات لذت جویانه در او می شود. اما نه، نمی توانست طور باشد. غیر ممکن بود که به کسی چنین نزدیک باشی، انقباز پوستش را زیر انگشتانت حس کنی، در هوایی که او نفس می کشد نفس بکشی، صورتش فقط چند متر از صورت تو فاصله داشته باشد، اما پریشان نشفی. وقتی به آن طرف صورتش رسیدم، کم کم احساس دست با چگی کردم. گویی را از گلیم خود درازتر کردم. شاید به حالتهای اطرافیانش خوب گرفته بود، اما ظاهراً تغییرات نامحسوس فشار دستم را حس می کرد، چون چشمانش را باز کرد و به چشمان من زل لحظه ای مکس کرد، بعد با لحنی جدی گفت لطفا به من نگو که عبروهامو هم تیق زدی. <تصفيق> فقط یه لنگش ریشتراش را درون آب کردم و شستم خدا خدا می کردم وقتی صورتم را برمیگردانم سرخی گناه رفته باشد بالاخره گفتم یه لنگه کافیه میتیم به ما سر نمیزنه؟ زنه گفت سرامو اصلاح نمی کنی؟ واقعا می اصلاح کنم آره موهامم باید کوتاه کنی فکر کردم قبولم نداری؟ تا حدی که میتوانست شانه بالا انداخت شانه هایش حرکت کمی داشتند گفت یکی دو هفتم دست از غور زدم برداری کمترین حزینه که بابتش پرداخت میکنم همینطور که داشتم زره های خمیر ریش را از صورتش پاک میکردم گفتم وای خدای من مامان چقدر خوشحال میشه آره اما به خاطر اینکه خوشحال میشه منصرف نمیشیم سرش را توی اتاق نشی من اصلاح کردم شامینه را روشن کردم و فیلم گذاشتم فیلم پولیسی امدیکایی حول دورشانش گذاشتم پیش پیش به ویل خبر دادم که کمی ناشی هستم. ولی از اینی که الان هست بدتر نمی شود. گفت ممنون ازد. دست به کار شدم. موهایش را لای انگشتنم گرفتم. تلاش می کردم اصول اصلاح مو را به خاطر بیاورم. ویل که سرگرم تماشای فیلم بود آسوده و خوشنود به نظر می رسید. هر از گاهی نظری در مورد فیلم می کرد. نقش اول در چه اول بازی کرده. اولین بار در چه فیلم او را دیده؟ سر و صدای نمفهومیم راه انداخته بود که نشان میداد از دیدن فیلم لذت می برد. درست مثل من وقتی با توماس بازی میکردم. با همه اینها تمام حواسم بود مبادا موهایش را خراب کنم. سرانجام تمام شد. پریدم و رفتم از روبرو رو ببینم چه دستگاری به آب دادم. ویل نمایش فیلم را قطع کرد و گفت چطور شد؟ صاف ایستادم. گمون نکنم تا حالا صورتت رو دیده بودم. حیف بود واقعا گفت سردم شده. سرش رو از چپ به راست ترکت داد. انگار داشت سرمایه پشت گردنش رو مزه مزه, مزه میکرد. گفتم صبر کن. الان دو تایی نمیارم تا خوب ببینی. فقط تکون نخور. هنوز سعون نشده. باید کمی مرتب شد. احتمالا یکی از گوش باید ببرم. به اتاق خواب رفتم و داشتم که را میگشتم تا آینه کوچکی پیدا کنم که صدای در شنیدم. صدای قدم های تند دو نفر به گوش رسید. صدای خانم ترینر بلند شد. مسترب بود. جورجینا لازفن نه! در اتاق نشیمن باز شد. آینه را قاپیدم و از اتاق زدم بیرون. اصلا دوست نداشتم دوباره ببیند که ویل را تنها گذاشتم. خانم ترینر در آستانه در اتاق نشیمن ایستاده بود. هر دو دستش روی دهان بود. پیدا بود با چیزی پیش بینی نشده مواجه شده است. تو خودخواه ترین مردی هستی که به عمرم دیدم. صدای زن جوانی بود که فریاد می ویل: باورم نمیشه از اولش خودخواه بودی حالا هم بدتر شدی. نگاه خانم ترینر به من افتاد که نزدیک می شدم. جورجینا، لطفاً تمومش کن. از پشت سرش وارد اتاق شدم. زن جوانی مقابل ویل ایستاده بود. روی شانه ویل هوله بود و تکه های قهوهی ما. کنر چرخ های سندلی روی زمین پخش بودند. زن، موهای بلند مشکیش را پشت سر جمع کرده و شلوار جین رنگ رو رفته ی گران قیمت و چکمه جیب پوشیده بود. پوستش برونزه و مثل آلیسیا زیبا و خوشندام بود. دندانهایش مثل آگهیهای های تبلیغاتی خمیر دندان از سفیدی برق میزد. همین همینطور داشت داد میکشید برای همین دندانهای سفیدش افتاده بود بیرون. صورتش از خشم سیاه شده بود. باورم نمیشه؟ نمیتونم باور کنم که حتی بهش فکرم کرده باشی تو چه؟ <تصفيق> صدای خانم ترینر قاطعانه به گوش رسید. جورجینا لطفاً! الان وقتش نیست. ویل با قیافه بی مستقیم به مقابلش زل زده و به جای نامعلوم خیره شده بود. آرام گفتم. ویل، کمک لازم داری؟ زن جوان یک دفعه چرخید. تو کی هستی؟ و من چشمانش را دیدم که پر از اشک بود. ویل گفت: جورجینا با دوشیزه لیزا کلارک آشنا شو. پرستار و آرایشگر بسیار خلاقم. لو، تو هم با خواهرم جورجینا آشنا شو. ظاهرا از استرالیا پرواز کرده و اومده تا سرم فریاد بزنه. جورجینا گفت: اینقدر بی خیال نباش. مومی لطفاً به من بگو خودم عمر رو میدونم. کسی واکنشی نشان نداد. گفتم: میخواید من برم؟ آره. فکر خوبیه. دست خانم ترنر روی کاناپه بود و مفصل انگشتایش سفید شده بود. از اتاق بیرون خزیدم. لویزا، شاید الان فرصت خوبی باشه برای وقت نه. ظاهرا از آن روزهایی بود که باید زیر سایبان ایستگاه اتوبوس می نشستم. ساندویچم را از آشپزخانه برداشتم، کتم را پوشیدم و راه افتادم. وقتی داشتم از خانه بیرون می آمدم، صدای جورجین ترینر را از داخل خانه می شنیدم. "به‌اله به ذهنت رسید یا اصلا قبول داری که فقط به خودت مربوط نمیشه؟" وقتی دقیقا نیم ساعت بعد برگشتم، خانه ساکت بود. نیتن توی آشپزخانه داشت لیوان می شست. وقتی متوجه ورودم شد به طرفم برگشت و گفت. چه خبر؟ رفت. کی؟ خواهرش نیتن به پشت سرش نگاهی انداخت. آها آره رفت. وقتی رسیدم گاز ماشینشو گرفته بود و داشت میرفت. دعوای خانوادگی آره؟ نمیدونم. وسط کودا کردن موهای ویل دیدم که این زن اومد و شروع کرد به داد و بیداد. اولش فکر کردم اینم دو سختر ویله. نیتن شانه بالا انداخت. حس کردم چندان علاقی به جزئیات زندگی شخصی ویل ندارد. گرچه شاید خبر هم داشته باشد. کمی تو خودش رفته. حسابی ازنش کردی. چه خوب شد که از توی جنگل آوردیش بیرون. به اتاق نشیمن رفتم. ویل نشسته و به تلویزیون چشم دوخته بود. تلویزیون روی همان صحنه‌ای که من اتاق را ترک کرده بودم متوقف مانده بود. گفتم: میخوای روشن کنم؟ دقیقه انگار صدایم را نشنید. سرش در شانه فرو رفته بود. چهرهی آرام ساعت قبل حالا حاله‌ای از غم در خود داشت. ویل دوباره در خود فرو رفته بود. خفلی به وجودش زده بود که من قادر به کردنش نبودم. مش زد. انگار تازه متوجه حضورم شده بود. گفت. آره. سبد لباسهای شسته دستم بود. و داشتم از حال می که صدایشان رو شنیدم. در ساختمان فرعی یواش باز شد و صدای خانوم ترینر و دخترش در راهروی طویل پیچید. گنگ و مبهم بود. خواهر ویل آرام گریه می کرد. حالا دیگر صدگش خشمگین نبود. بلکه معصوم و بیالایش بود. حتما کاری است که بتونن بکنن علم پزشکی پیشرفت کرده. نمی تونید ببریدش آمریکا آمریکا همیشه از هر نظر جلوه. پدر در جریان آخرین پیشرفتا هست. اما نه عزیزم. هنوز نه. مطمئن باشم. با قبلش خیلی فرق کرده انگار تصمیم گرفته دیگه به چیزی خوشبین نباشه. امیدش رو از دست داده. جورجینا از همون اولش همینطوری بود. فکر کنم چون کم میدیدیش اونجوری فکر میکنی. فقط زمانی که می اومدی خونه میدیدیش. به نظرم همیشه اینطور بدبین بود. فکر میکرد اتفاقی میافته. معذب بودم که صحبت‌های خصوصیشان را میشنفن. اما جب غیرعادی که وجود داشت ناخداگاه کنچکاون می کرد. آرام آرام به طرف در رفتم. جوراب به پا داشتم و صدای قدم هایم بلند نمی شد. ببین من و بابا بهت نگفتیم. نمی خواستیم ناراحتت کنیم. اما می خواست... گویی با کلمات درگیر بود. ویل. ویل می خواست خودشو. خودشو بکشه. چی؟ بابا دیدش برمیگرده به دسامبر گذشته وحشتناک بود نمیدونی چقدر وحشتناک بود با اینکه خودم حد زده بودم و این حرف فقط تعییدش میکرد حس کردم جان از بدنم رفت صدای گریه ای میآمد و نجوایی که دلداری میداد دوباره سکوت طولانی برقرار شد سپس صدای جورجینا که از اندوه کلفت شده بود به گوش رسید. این دختره کیه؟ لوئیزا را استخدام کردم تا مواظب باشه دوباره چنین اتفاقی نیفته. بقیه را گوش ندادم. از داخل دستشوی انتهای راه رو صدای نیتن و ویل را میشنیدم شنیدم که نجواکنان با هم حرف میزدند. بیخبر و قافل از مکالمهی که فقط چند متر دورتر از آنها در جریان بود. یک قدم به در نزدیک تر شدم گمان میکنم از همان موقعی که جای زخم را روی مچ دستش دیدم خودم فهمیده بودم همه چیز با هم جور در میآمد نگرانی خانم ترینر که ویل را طولانی مدت تنها نگذارم مخالفت ویل با حضور من در آنجا و این واقعیت که تا مدتها فکر می کردم چرا استخدامم کردند، وقتی هیچ کار خاصی ندارم انگار آمده بودم از بچه نگهداری کنم من هم خبر نداشت، ولی خود ویل می دانست و برای همین از من متنفر بود. دستگیره در را گرفتم. می خواستم آن را یواش ببندم. نمی دانستم نیتن می داند یا نه. کنجکاو بودم بدانم حالا ویل حضور مرا پذیرفته است یا نه. حالا که فهمیده بودم مشکل ویل من نیستم، نفس راحتی کشیدم. و این از خودخواهیم پس ویل از این واقعیت که برایش به پا ناراحت بود. مامی نمیتونی اجازه بدی این کارو بکنه. و باید جلوشو بگیری عزیزم، انتخاب با ما نیست. جورجینا مخالفت کرد. هست، اگر از تو بخواد کمک کنی؟ هنوز دستم روی دستگیره در بود. اصلا باورم نمیشه تو موافق باشی پس اعتقاد مذهبی چی میشه پس کارایی که کردی چی پس چرا این دفعه آخر نجاتش دادی لهنه کلام خانم ترینر تعمدن آرام بود انصاف نبود اما تو گفتی که میبریش چطور لحظه ای با خودت فکر کن اگه قبول نمیکردم از دیگران کمک رو رفتم به دیگنیتاس اشتباه محزه میدونم زندگی برش سخته ولی تو بابا رو از با در میاره مطمئنم به احساستون فکر کنین به حرف مردم فکر کنین به شغلتون هر دوتون روز با یه میشین خودش باید اینو بفهمه حتی درخواستش هم خود خواهیه. چطور میتونه چطور میتونه این کارو بکنه شما چطور میتونید این کارو بکنین دوباره به گریه افتاد جورجینا اینطوری به من نگاه نکن مامی ویل برای من خیلی مهمه خیلی زیاد برادرم به من عاشقشم نمیتونم تحمل کنم حتی نمیتونم بهش فکر کنم اشتباه کرد که درخواست کرد و تو اشتباه کردی که قبول کردی اگه گوش به حرفش بدین فقط زندگی خودش نیست که نابود میشه <تصفيق> یک قدم از پنجره دور شدم. گوشم چنان زنگ میزد که به سختی جواب خانم ترینر را شنیدم. جورجینا، شش ماه به من قول شش ماه و داده. آلم دیگه نمی‌خوام دوباره حرفی در این مورد بزنی. به خصوص جلوی دیگران. و ما باید. افسر امیقی کشید حتما باید شب و روز توها کنین که چیزی اتفاق بیفته که اون تغییر عقیده بده